خیلی متشکرم بفرمایید بفرمایید رسال السلام و يا یا الله السلام و يا ابن رسول الله السلام و يا یا سکنۃ النجا سیدنا مولانا یا صاحب از زمان و ادريم ولا ولاتو سیدنا نحن ضيوف بوك، آنطور الهينا. سلامت عليكم جميعاً. عقد بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربش لي صدري و لي امری وحلول اغنطن من نسانی یفقه قولي قولی الحمدلله رب العالمین و و خاتم المرسلین طبیبنا حبیبنا شفیق ذنوبنا قبل قاسم محمد <تصفيق> و آله المعسومین سیما مولانا فقیت الله في عجل الله فرجه و رزقم الله صحبته و الاستشهاد بین یده و لعنه على اعدائهم اجمعین اوسی عباد الله به الله و بند عزیز در آیات قرآن حکیم مسئله تقوا را باب رحمت و راه تقرب و وسیله بیمه شدن از آفات و های دنیوی و اخروی و منشأ سهولت و آسانه زندگی بیان فرموده است رست سعادت و نیکبختی اینه که قدرت مطلق و علم بیکران و وجود لایتناها موجود ضعیف را در پناه خودش قرار بدهد و اگر کسی بخواد الله لایتناها رحمت مطلقه قدرت لایزال بنده را همراهی کند تا هیچ بمبستی براش در زندگی پیش نیاد به هیچ مشکلی او را فرسوده نکند باید تقوا داشته باشه خدا منان فرموده است ان الله مع الذين تقوا و هم محسنون خدا همراه کسانی است که تقوا دارند تقوا دارند یعنی زندگیشون با محاسبه رضای الهی تنظیم شده است. به قرغگاه خدا نه با اعضا و نه با احساس و گرایشهایش، و انا با فکر و اندیشهش تجاوز نمیکنه. حرم حریم خدا را نگه می دارد. این آیه کریمه که در سوره مبارکه یاسین قلب قرآن است توصیه می شود برادران عزیز مؤمن ما چونهایی که در صفوف نورانی نماز وحدت بخش جمعه حضور دارند و چونها که حضور ندارند هر شب سوره یاسین رو قرائت کنند و هر صبح به پناه این خیمه عظیم الهی بروند خیلی آثار و برکات دارد در این سوره فرمود علم احد علیکم یا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان إنه لكم عدو و مبین و انعبدونی ها زا مستقیم ای فرزندان آدم آیا با شما پیمان نبستم که شیطان را نپرستید خدا را بپرستید این است صراط مستقیم پرستش شیطان به اطاعت شیطان است هرگاه انسان گناه میکند، شیطان فرمانده است و اون نوکر شیطان است. دزا حالت ضلتی داره شیطان دشمن خداست کسی اطاعت شیطان بکنه فرمان شیطان ببره همون مقدار که مسئولین سیاسی کشورها وقتی از شیطان بزرگ اطاعت کنند دلیل ضلت و خاری رزالت و پستی است کسی نباید از شیطان بزرگ که دشمن همه بشریت است و ظاهرا و باتنن گردن کلفتی میکنه در برابر گردن کلفت کوتاه آمدن تقویت اوس و از بین بردن خود انسان است. اینایی که امریکا را و قدرتهای استکباری قرب و کفر جهان را یاری می کنند و با برنامه های اونها و اشارات اونها برای مردمشون برنامه ریزی هم تجربه است هم حدیث من از ظالمن سلطه الله علی هر کس ظالمی کمک کند در ظلمش خدا اون ظالم رو بر خود این کسی که کمک ظالمه مسلطش می شیطانم ابتداعا تسلط نداره گام به گام میاد یه بار وسوسه میکنه و بشر قافل به خاطر لذتی به خاطر شهرتی به خاطر ثروتی حرف شیطان رو قبول میکنه و با دستور شیطان خلاف شر انجام میده این دو سه مورد که فرمان شیطان رو اجرا کرد شیطان در او مسلط میشه اسیرش میکنه و تا قعر جهنم میبرد بنابراین در این نماز جمعه که انشاءالله کانون نور است ضیافت الهی است سفره خاصی است که خدا برای کسانی که دعوت خدا را لبه گفتن و در این اجتماع عظیم حضور به هم رسوندن در این معایده عظیم بهره بگیریم و بهترین بهره اینه که حالا که سر سفره خدایم مهمان خداییم یه استفار درست حسابی نسبت به گذشته بکنیم و از نماز جمعه که برگشتیم هم تندی ها رو کم حوصلگی ها رو گیر دادن ها رو باهانه جوئی ها رو طلبکاری های به اعضای خانواده رو کنار بگذاریم ما چه طلبی از همسرمون داریم چرا باید طلبکاران زندگی کنیم چرا عاشقان زندگی نکنیم چرا مودتی رو که خدای متعال به عنوان تابلو زندگی خانوادگی و جعل بینکم مودتن و رحمه چرا این تابلو تو زندگی ما نست نشه چرا اعضای خانواده هم دیگر رو دوست نداشته باشند و این دوستی رو پاس ندارند؟ حریم رو حفظ کنیم بدترین ظلم ظلم به ارخام است و در ارخام هم اعضای خانواده و اولن ارحام بعضهم اولا به بعدن فی کتاب الله بچه با پدر خودش جوان با مادر خودش دختر خانم با والدین خودش بزرگترها با کوچکترها، کوچکترها با بزرگترها هر کسی برای خدا این چراغ محبت رو پرسو کنید بذاری زندگی تو نور بگیره مرا جدال یه حرفی پدر میزنه یا مادر میزنه و طرف قبول نداره رد میکنه اونم سماجت میکنه حتما حرفش قبول بشه. به بگو مگو کشیده میشود و این مرا جز است که آرامش رو دینداری رو به خطر میاندازد. اندازد رحمالله من ترک مرا. هم در غیر خانواده همین جوره رپیق با رپیق خودش کسی با زیر دست خودش یه چیزی میگه جان می افته پشارو تحمیل کردن ایجاد اکس میکنه نباید پرزندان خودمون رو به روحمون بکشیم نباید دیر دست رو مقابل خودمون قرار بدیم سعی صدر بلند نظری بزرگی بزرگ منشی مایه نجات همگان است در سوره مبارکه حمد صحبت در این بود چه چشمه جوشانی از موقع نزول این آیات کریمه دلهای اتشان کنار این چشمه نشستند هر کس به مقدار اتش خودش سیراب شده رنگ بقا گرفته و تا قیام قیامت تشنگان را سیراب میکند ایا که معبود و ایا که نستعین نکاتی رو که هم مرحوم شیخ اعلی الله مقامه شریف که به گردن ما ایرانیان و پیروان اهل بیت اسمت و طهارت حق عظیمی دارد و الگوی خوبی برای وحدت حوزه و دانشگاه این علامه بیبدیل است که هم در علوم تجربی مهندسی ریاضی هم در علوم رسمی حوزوی فقه اصول کلام فلسفه عرفان و هم در علوم غریبه و هم در صفای باتن کسی است که وقتی ازش میپرسند آیا شما مهدر امام عصر را درک کرده جواب می دهد هم در خواب حضرت را زیارت کرده هم در بیداری این بزرگوار کتابی در تفسیر سوره این بارکه هم دارد به نام القروت الوسقا و هم بزرگان دیگری که در خطبه های سابق نام ازشون بردیم ولی تصنیم شریف که جز بهترین است که به جهان بشریت عرضه می شود و سر علامه تبا, تبا که بروز کرده در این تفسیر ایشون طبقه بندی کردند و می اینکه این که می ایا معبد و ایا کن نستعین معموریم همین آیه را بگوییم با توجه به معنایش بگویم فقط تو را عبادت می کنیم فقط از تو یاری می طلبیم چرا نمی گویم فقط تو را می پرستم فقط از تو کمک می خواهم معبود من فقط تویی یار و یاور من هم تنها توی تنهایم تنها توی میخانیم با این همه جز تو کسی ندارم فقط از تو میخواهم ولی در نماز نمیگوییم از تو میخواهم میگویم از تو میخواهیم ایشان حاصل فرمایشی است که سابقین هم گفتند ولی طبقه بندی شده است در این کلام میگوید انسان یک مجموعه است انسان قوای ملکی دارد قوای ملکی دارد قوای جسمی دارد قوای ظاهری دارد قوای باطنی دارد و اگر کسی چشم واقع بین داشته باشد وجود نازنین تنین ما از ماست خدا میخواد در الاشیاء انسان گاهی یک فرد نیست یک امت است هم ملک های همراه ما هستند اینا فقط اشاره است خیلی دلنشین است فهم این مسائل ما تنها نیستیم هر جا بریم خدا یک تیمی رو همراه ما قرار داده اونا هوای ما رو دارن و ما اونا رو نمی بینیم و ان علیکم لحافظین کراما کاتبین اینکه ما من قول الا لتیه الرقیب عتیت اون یک مرحله است یک ماموریت است ولی بر اساس نص سریح قرآن یه تیمی از فرشتگان مکرم معصوم الهی بر ما گمارده شدن اینا هیچ جمار رو تنها نمیگذارن حواظمون باشه وقتی نماز میخونی کیا با تمراه تو خلوتها خیال میکنی خلوت تنهایی به خدا هیچ جا تنها نیستیم چرا حواظمون نیست ان علیکم لحافظین کرامان کاتبین اینا با اینکه مأمورین حفاظتی هستند برای ما اما چقدر بزرگند چقدر عظمت دارند آبرومون نمیبرند سر و صدا را نمیندازند هر روز از ما عذیت میبینن هر روز از ما آزرده میشند با گناهان زبانی و چشمی. و درآمدی و حزینه ای و مرد و مازاری و بعد خدمت کردن اینا دارن می‌بینن و عذیت میشن محسومن غیرت دارن ناراحت میشن اما رسوامون نمیکنن، افشامون نمی کنن. ما وقتی میگیم کن نعبد و کن استعین تنها منی که دارم حرف میزنم نیست قوای من در حال عبادت است، و من گوش من پوست من سلولهای بدن من ملائکه همراه من قوای نفسانه من عقل من احساس من یه جهانیه یه عالمیه و مجموعه رو این در کلاس اوله انسان خودش و همراهان خودش رو میگوید یا که نعبد و یا که نستعین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الهاک متکاسر حتی زورتم المقابر کلا صوفت علمون سمه کلا صوفت علمون کلا لو علمون علم اليقین لترغن الجحیم ثم la carabunno ho aina li yaqiin somma la tuss اعوذ بالله من آموزش. آموزش. بسم الله الرحمن آموزش. الحمد لله رب اللهم صل وسلم على سيد رسولك ومبلغ رسالاتك امين وحيك، ابو القاسم محمد صلى على سيد و قائد الغر المحجلین مولانا امير المؤمنين علي بن عبی طالب و على فاطمت سیدت نساء العالمين و على صفت الرحمة و سید شباب اهل الجنه الحسن والحسين أصلنا على أئمة المسلمين علي بن الحسين محمد بن علي بجعفر بن محمد ومصفن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد فالحسن بن علي ابن الصالح صالح القائم فجئت يا انا عبادك و امناءك في بلادك بهم نتولا ممنع اضهم نتبر و كلام الله تبارك و تعالی اوصيكم عباد الله بتقوى الله شما مؤمنان شما هوشیاران شما مسافران راه بقا و دلدادگان به خدا و نفس ضعیف خودم را به تقوای الهی به پرهیز از گناهان رید و درشتش و به التزام به واجبات مسئولیت های همجانبه دعوت میکنند و من یتق الله یجعل له من امره یست را مال گناه هست فشارها مال گناه هست مسئولین ناخلف نتیجه گناه هست ناب در مجاری مدیریتی کشور عکس عمل گناهان خود جامعه کما تکنون یوالله علیکم این قانون جامعه شناسی را حضرت امیر بیان فرمودند. اگه بخواید اداراتتون خدا درش باشه، کار درش باشه، نشاط درش باشه، روح خدمت درش باشه، اکرام مردم درش باشه، احترام بر باب روجو درش باشه، از خودتون شروع کنیم، خودتون، مشکلات خصوصا مشکل اقتصاد با کلید تقوا قابل باز شدن است از طریق آیات قرآن است ولو ان اهل القرى آمنوا و تقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء و با خدا زندگی کنیم خدا با ما ما هم با خدا باشیم همه جا همه جا عجله نکنید. کاری پیش میاد بیادمون یادمون بیاد که خدا ناظر است خدا حاضر است ببینم این کاری که میخوام بکنم این حرفی که میخوام بزنم این برخوردی که میخوام بکنم این امضایی که میخوام بکنم این پولی که میخوام بگیرم این پولی که میخوام بدم آیا خدا راضیه یا خدا ناراضیه مسائلی که در این خطبه قابل تر هست مسئله بسیار حساس جهانی و منطقه ما این اظهارات خطرناک رئیس جمهور بحرانیه بی بیعصالت منفور قیالات متحده امریکاست که قدس را پای پایتخت رژیم غاصب جعلی کودکش بیرحم جلاد بی هویت بی اصالت معرفی کرده و بنای انتقال سفارتشون به این شهر شریف رو اعلان کرده است این مسئله سابقه دارد سازمان ملل در دو تا قطنامه که اون قطنامه هم ظالمانه است زیرا به اسرائیل غاصب هم مشروعیت داده ولی در این دو تا قطنامه تقسیمی که بین فلسطینی ها و اسرائیلی ها بیان کرده و مصبب کرده این است که قدس را از آن فلسطینی ها و به عنوان جایی که در اشغال اسرائیل است معرفی شده اما بعدها کنگره امریکا تصدیب کرد که اینجا به عنوان پایتخت اسرائیل باشه لیکن روحس جمهور سابق با این که از نظر ماهیت اونها هم همین ترامپند، منتها ترامپ شرور بدون نقاب است و اونها شرور با نقاب بودند این وحشی بدون ماسک و اونها وحشیهای با پوشش مخملی بودند اونها با ملاحظه منافع امریکا این مصدبه کمری کنگره که خلاف نظر سازمان ملل است و خلاف های سازمان ملل است عملی نکردند یک ملاحظه منافع کردند اما ترامپ از این جهت که یه داماد صهیونیست داره بناگاه ریاست جمهوریش با همین سهیونیست های امریکا شکل گرفته است نزا منافع سرش نمیشه سیاست هم سرش نمیشه و واقعا موجود عجیب قریبی است. گرچه این رؤسای جمهوری امریکا همه اونهایی که قبل بودند و اینی که هست خودشون استقلالی ندارن در حس پرده اوامل و قدرتی که دنیا را دارن غارت میکنن اینا رو جلو مندازن اینا کنیز اونان اینا نوکر اونان اما این حرف خطرناک را این جرأت کرد چون ابن سینا گفته من از گاب میترسم زیرا که شاخ دارد و عقل ندارد این هم همین جوره شاه داره ولی عقل نداره و همین بیعقلی برای کشور خودش برای ملت خودش چه مشکلاتی تا کنون هم آورده و برای جهان بشریت چه بحرانهایی رو دارد یکی بعد از دیگری ایجاد میکند اما عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد ما که موحدیم ما که معتقد به مدیریت حضرت حق هستیم ما که خدا را در ربوبیتش حکیم و عزیز میدانیم میدانیم ملت ما انقلاب ما بر اساس فرمان خدا و اجرای دستور خدا بوده نظام ملت ما به پیروی از رهبری موحد و مؤمن ما در سابق و لاحق در خط خدا داره حرکت میکنه و مشمول آیه تنصر الله یانسر و یثبت اقدام دست غیب را و امدادهای مرموز الهی را همیشه همراه مقاومت به انقلاب دیده ایم. هم در دوران انقلاب هم در جنگ تحمیلی هم در مسئله فتنه هفتاد 88 همه جا دست خدا از آسمان برآمده است و با امدادهای غیبی این مردم مؤمن ما تثبیت شدند و در مسیرشون دلگرمتر و حال هم میبینید داعش را ساخته بودند که حصار امنی برای اسرائیل غاصب درست کنند و دو کشور مهم عراق و سوریه را تجربه کنند نه تنها به این هدف شوم و شیطانی و توتعشون نرسیدن بلکه باعث شدن هم, هم نفوذ منطقی ایران نفوذ احساسی، عاطفی، سیاسی، نظامی ما در کل منطقه تعمیق بشود و هم خطرهای جدیدی با اتحاد کشورهای مختلف در بعد مقاومت با تشکیل زینبیون و حیدریون و پاتمیون و نجبا و بسیج یک حلقه مستحکم دفاعی و نظامی به وجود آمده است که با این مقدمات زوال اسرائیل نه در مدت خیلی طولانی بلکه انشاءالله به همین زودی قطعی و خیر قابل انکار است. یکی از اهداف شومی که در ترهاشون منظور کرده بودند این بود که کشورهای اسلامی رو مشغول خودشون بکنند فتنه رو در داخل ایجاد کنند و جنگ داخلی باعث بشود مسئله فلسطین که مسئله اول جهان اسلام است و از اولویت اول برخوردار است این رو به هاشیه برانند تا حدی حد هم رانده بودند، اما این حرف ابلهانه ترام باعث شد همه کشورهای اسلامی اکسل عمل نشون دادن مردم فلسطین یک پارچه به پا خواستند، انتفاده سوم تشکیل شد کنفرانس اسلامی محقق شد قهرنامه ها و تصمیمات جهان اسلام منعکس شد و باز اون اولیت و اولویت مسئله تلسین که مسئله اسلام است در جایگاه خودش قرار گرفت علاوه بر اون یک بار دیگر انزوای امریکا در جهان رقم خورد زیرا خود غربی ها و هم پیمانان اروپایی او رد کردند نخست وزیر بیشرم اسرائیل وقتی به فرانسه رفت همانجا اعلان کردند که ما این حرف ترامپ را قبول نداریم و خلاف های سازمان ملل حاضر نشدند به اینها چراغ سبز نشون بدن به اینها همه امدادهای غیبیست که هر کار اونها می کنند. به ما ضربه بزنند به اسلام ضربه بزنند کمانه می کند. به خودشون بر ما قوی تر شویم و استکبار امریکا هر روز ضعیفتر. اما توصیه این است این انتفاضه ای که شروع شده است باید با توصیه حوشمندانه الهی نورانی پرچم نفت نهضت امید مظلومان در غیبت امام زمان یعنی رهبر عزیزمون حضرت آیت الله العظما امام خامنه ای که توصیه فرمودند بر تسلیه فلسطینیان باید تمام مردم بهپاخواسته و مظلوم فلسطین که مورد ظلم مضاعف قرار گرفتند مسلح بشوند و مقاومت مسلحانه را ادامه بدند کشورهای اسلامی حال که در کنفرانس جمع شدند به یک قطنامه وسنده نکنند بلکه همه به میدان بیاند هم طبق توصیه این ابر عرب عبر مرد قرنما یعنی رهبر حزب الله لبنان سید بزرگوار سید حسن نصرالله الله که این سفارتخانه اسرائیل رو در بعض کشورها یا همه کشورها بیان تأثیر کنن و سفرای امریکا رو احزار بکنن یاد داشت که اعتراض به اونها بدن و باز به سفارش یکی از صاحب نظران جهان عرب بیان تحریم بکنن همه کشورهای اسلامی کالاهای اسرائیلی و امریکایی رو تا رسیدن به حصول مطلوب اینا تحریم بکنن تا امریکا هم در انزوای اقتصادی، انزوای سیاسی انزوای فکری و مورد نفرت جهانی قرار بگیرد و تحت فشار دست از این یاوهگوییها زورگوییها بیخانونی ها بردارد و مسئله بعدی که در این خطبه مطرح است رقت به حال یمن است هم امداد الهی شامل حال مردم یمن شد این از بین رفتن علی عبدالله صالح که یک مهره فتنگر تحت تأثیر عربستان خائن و امارات زیلو و قرار گرفته بود و نگرانی بود که فتنه داخلی به هم بریزد این قیام واقعا اجاز آمیز مردم مظلوم یمن را با کشته شدن این فتنگر مردم یمن منسجمتر شد منسجم شدند با امید آن میرود که این رژیم صفاک کودک بیرحمی که نه مسلمان است و نه عرب است این همه جنایت در یمن دیگه چیزی باقی نگذاشتن به همین زود انشاءالله به صدای عملش برستد مسئله شورای انقلاب فرهنگی و اتحاد حوزه و دانشگاه یا وحدت حوزه و دانشگاه وقت تمام است دو سه جمله به محضر شریف شما که در فضای عمومی هم منعکس می شود مطلب خدمت شما عرض می کنم در قرآن کریم ما علم مطلق نداریم علم در ادیان الهی، ابزار است، وسیله است، راه است، مسیر است. هم باید مبنا مشخص باشد، هم باید هدف روشن باشد. و در دانشگاه‌های ما قبل از که آمریکا بیاد و دنیای غرب استعمار بکنند کشورها را و ما را در قالب دانشگاه هم از علم عقب نگه دارند هم ترهنگ دینی ما و اخلاق سنتی ما را مخدوش بکنن ما خودمون دانشگاه داشتیم جندی شاپور داشتیم ما خاج نصیر توسی داشتیم ما همه علوم را زیر لوای اسلام با مبانی دینی و با مقاصد اخلاقی و معنوی ترتیب داده بودیم ابن سینای ما خاجه نسیر ما دیگر بزرگان ما ریاضیدان بودند طبیب بودند در علوم مختلف تجربه سرامت بودند علوم اسلامشون هم از قرآن حدیث گرفته شده بود لذا علمی سالم مثل هستهی سلخاموز آمیز بود خطری برای جایی نداشت بی اخلاقی نداشت بی افتی نداشت حرزجی نداشت و در این محیط ها هنجار شکنی یا یابگویی بعض قدگراها در قالب و استاد وجود نداشت اما انقلاب آمد در دانشگاه پایگاه زد علمای ما در مسجد دانشگاه تهران به تحصن نشستند و این دانشگاه های ما با ریشه‌ای که در خانواده‌ها از نظر دینی داشتن کنار علما در این نهضت زیر پرچم ولی فقیه انقلاب کردند و شورای انقلاب فرهنگی این دو کلمه را هم باید انقلاب را دائما به صورت برنامه در بیاره ما در این خطبه‌ها مطالب اخلاقی میگیم ولی هر وقت باید این رو صاحبان فکر در اتاقهای اندیشه ورد به صورت برنامه در به این دانشگاه ها اگر به بایدها و نبایدها و اگر حوزه‌های ما به نیازهای جامعه و دانشگاه توجه کنند، آنها شایستگی ها بایستگی ها بایدها و نبایدها را از حوزه بگیرند. با حوزه نیازهای دانشگاه ها را دریافت کنه هم مبنا بدهد به دانشگاه ها و هم علوم را هدفدار دار کند قطعا جامعه ما در یک سرعتی همبار سرقافله می شود و به مقاصد عالی خواهد رسید شهادت آیت الله دست غیب شهید محراب هم عارف بودند هم حکیم بودند هم معلم اخلاق بودند هم با بزرگان اهل فنا در ارتباط بودند این شهادت را به محضر شریف امام زمان به ملت به مردم شریف فارس تبریک و تسلیت ارض می‌کنم چه سعادتی عمر طبیعی کرد و بینی کرده بود استاد شهادتش رو مقدمه فنا بهش معرفی کرده بود و او میدانست بدنش قطع قطع میشود و کیسه ای در داخل کفنش آماده کرده بود وقتی میخواست بره با آمادگی کامل به قربانگاه خودش رفته بود من هم به دودمان محترم دستگیر و بازموندگانشون به سید جوان نواده اون بزرگوار که هم نتونستیم در این تجلیل کنار آسمان مقدس حضرت احمد ابن موسی شرکت بکنیم می میکنیم و هم این بزرگ مرد را تجلیل میکنیم تکریم میکنیم و امید حجر با ایشان و شفاعت ایشان رو داریم اعوذ بالله من الشیطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا تصبح بحمد ربك بسفر فرح فغفرهو انه كان توابا با نسألك وندعوك و ندعوك بفاطمه و بعلها و بنیها عظمت مستطابتی ها يا الله. يا الله. يا الله. یا الله یا الله یا الله خدایا امام زمان ما را برسان خدایا حکومت جهانی حضرت را در زمان ما محقق بفرما خدایا ایران منتظر را در انتظارش به آرزویش برسان خدایا دست نفوذی ها را از مجاری اجرایی، تقنینی، قضایی ما کوتاه بگردان. <تصفيق> الهی پروردگارا خدمتگذاران صادق را برجسته، مرغوب، محبوب و پیروز در خدمتشون قرار بده. <تصفيق> خدایا، رهبر بزرگوار ما را، مرجع عالیقدر قدر ما را، علمای بزرگ ما، مراجع تقلید ما در پناه ولی عصر از گوند روزگار در امان بدار جبهه مقاومت را به پیروزی کامل در همه ارسه ها نائل بفرما نسل جوان عزیز ما که سرمایه کشور ما و آینده ساز نلتهای ما هستند خدایا از سرگردانی از بیکاری از ابتزار از بی هدفی نجات عنایت بفرما مرزا عمومن مریض های مورد نظر سید مریض مورد نظر عالم بزرگوار استاد عزیز ما و همه مریض مورد نظر سرطانی های شده شفای کامل مرحمت بفرما اله سلام و اعلان آمادگی ما را به محضر شریف امام زمان ما ابلاغ بفرما. دشمنان ما در رأسش استکبار خونخار عالمی با سرکردگی امریکا سهیونیست ها، سلفی ها، منافقین داخلی کسانی که دلی با ولایت و دین ندارند و بی هدفت دنبال مقاصد ماده خودشون از خدایا رسوا نقشه هاشون رو خونسا بفرما و السلام علیکم و رحمت الله